فصل شش بخش چهارم آشورای حسینی شهادت امام حسین علیه السلام و مسائب بعد از شهادت نیزه و شمشیرها را آختند بهر خود دوزخ به اقبا ساختند دید زینب ده نفر بر روی اسب، بر تن ارباب بیسر تاختند معجر و زیور به غارت رفته شد آه آتش در خیام انداختند بین راه کوفه و شام بلا پای نی بر عیش خود پرداختند گر به ظاهر قهرمان کارزار در حقیقت هست خود را باختند عصر آشورا و آتش گرفتن خیام امام حسین علیه السلام گریز به مدینه تا در خیام شاه بی سر آذر افتاد زینب بیاد ناله های مادر افتاد افتاد یاد مادری قامت خمیده آندم که در بر روی یاسی پرپر پر افتاد مسمار هم در سینه پردرد رفت و پا تا به سر آتش به جان حیدر افتاد بهر دفاع از دین حق زهرا شکست و قرآن به زیر دست و پای کافر افتاد آخر زداغ کوچه ها قلب حسن سوخت گوی به قلب مجتبا هم آزر افتاد